شریعت کی سوگماد. جلد دوم یادداشت مترجم شریعت کی سوگماد کتاب مقدس پیروان اکنکار است شریعت به معنای شریان و راه می باشد در زبان سانسکریت کس اضافه می باشد و سوگماد نام حقیقی خداوند است بنابراین این عبارت شریعت کی یعنی شریانی که به آن وجود شابدانه ختم می شود و به اختصار راه به سوی خدا معنی می دهد شریعت مانند هر کتاب مقدس دیگری به زبان استوره درآمده است این صحیفه فی نفسه به صورت زبان رمز است آن همانند قصه است زیرا تنها صورتی است که می تواند در تمامی ادوار معنا داشته باشد لیکن گسترش معنای درونی آن بیپایان است هر آنچه که به عنوان راه حل قطع مبنا، تفکر، استدلال یا هر نرم‌افزاری از این قبیل که بخواهیم بدان دستیابیم از طریق شریعت یا لوح محفوظ همواره در اختیارمان است به عنوان مثال هنگامی که شما با تفحص در پدیده به یک نتیجه مهم می رسید و یا پاسخ سؤال خود را پیدا می کنید، در حال نقب زدن به این لوح محفوظ هستید مطالعه مستقیم شریعت تنها از یک راه امکان پدید است روبرو شدن از طریق روح بایستی توجه داشته باشیم که همه ما به صورت ناخداغاه با این الباه در ارتباط هستیم و زمانی که از این خط سیر ارتباطی آگاهی بیابیم شکل خاصی پیدا می و ما شاهد وقایع و ماجره خواهیم بود که آن را یک تجربه معنوی قلم داد بکنیم. هرکس کس در تجربیات درونی آن را به یک صورت خاص می‌بیند. در آنجا کلام مطرح نیست ولی پس از مدتی یک سری افق‌های تازه برای فرد باز می‌شود که خودش می‌تواند این افق‌ها را تشخیص دهد. حکمت همواره یک نقطه تمرکز لازم دارد. نقطه تمرکز همان شریعت است و به واسطه پیوستگی حکمت یا حیات این نقاط تمرکز هم درون ما و هم بیرون از ما وجود دارند که در معابدی تحت عنوان معابد حکمت زرین محفوظ می گردند قضی نقاط تمرکز به تمامی کیهان جریان می آبند. شریعت یافته روح در جهان پایین همچنین حکمت جهان های بالا و همینطور یافتههایش در جهان بالا میباشد. این بدان معناست که یافته های مانیز در این لوح محفوظ سبت می بنابر بنابراین شریعت در حال افسایش است. خود ما به می افتاییم. در نتیجه فارغ از زمان می باشد. حقیقت زمان ندارد. لیکن اصطور ناچار است برای درک تفصول ذهنی زمان را پیش بکشد. همانطور که گفته شد ارتباط شخصی با این لوح به طور دائم میسر است. اما چنانچه امکان اتصال مستقیم نباشد از پدیده ها، از شرایط یا ارواح دیگر استفاده می شود. تا اتصال برقرار گردد. آنجا مملو از حکمت است. الگوهای مورد نظر خود را مییابیم و بیا اینکه یافته‌هایمان را انتقال می‌دهیم. کتب آسمانی خاصیتی را در خیش مستتر دارند. مثلا قرآن دارای ساختاری است که قرائت آن حتی بدون دانستن معنای عربی نرمفطاری را در ذهن مستقل می‌نماید که باعث اتصال به معنای آن می‌شود. این ریسم در شریعت نیز وجود دارد. در ترتیب و تسلسل عبارات راضی نهفته است که در ایچه هایی را به روی ذهن می‌گشاید که تنها خود فرد متوجه آن می‌گردد. این جوهره در کلیه های اکنکار وجود دارد. به این معنا که لوح محفوظ و کتاب اکنکار فارغ از زمان و مکان هستند. در پایان تذکر این نکته ضروری است که به واسطه کارکرد ذهن در تمامی مکاتب و مذاهب و طرق مختلف معنوی که هدایت نوع بشر را احتدار هستند یک الگوی مشترک وجود دارد ولی نبایستی دچار این تبخم شویم که همگی آنها یک چیز را میگویند کلام آنها به واسطه محدودیت زبان مادی ممکن است عباراتی مشترک را عرض نماید لیکن بایستی توجه کنیم که ما را به کدام این منشه متصل می نماید بارک